بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشنده یه قل اعوذ بی الناس بگو پناه میبرم به با پروردگار مردم ملئ الناس با پادشاه مردم اله الناس با خداوند مردم مشز الوسوس القنات، از شر وسوس کنندگی پنهان شبنده،الذي وسوس في خدور الناس، آن که در دلهاوی مردم وسوس میکند، من الجنة و الناس. از چنیان با مردم با چرافت گفت پربارتگار بزورد پربارتگار ما صداوی منودی تبهید را شنیدیم که دعوت می کار با پربارتگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم پروفتگارا گناه خان ما را ببخش و ما را با نیکان بمیرن پروفتگارا انچرا با وسیلی فیان برن ما را وعده فرمودی بما مرحمت کن و ما را در روز رستاخیز رسوا مکردن دیرا تو هیچ کاس وعدی خود تخلف نمیکنی. کنی بار الها ها نمی دانیم چگونه به پیشگاهی تو آوریم که بر ما منت نهادی و توفیق نصیب کردی تا این ترجمه جمار، جمار، جمار، که نام سلسله نور مصنع شده است بیاری و استعانتت پایان یابد خداونده هم دو سفاس بی پایان تراست توی عزیز و غفار و سطار و رحیم و رحمان آفریدگارو. ممکن است در این ترجمه لغزشها ها و سحقه ها و یه اصناف سرز رباقشد با لطف و مرحمت بی پاگانت بر ما ببخش با امیدواریم بندگانت نیست بر ما ببخشند خداوندکار این خدمت ناچیز را از همۀ ما به کرمت قبول فرما و سعیو تلاشه ناقس ما را در ثمرۀٔ اعمال حسنی ما به حساب آور آمین یا رب العالمین